اللهم از من الشیطان العجین با اسم الله الرحمن الرحیم.الحمد لله رب العالمین و الله علی سیدنا رسول الله.و آله الطیبین الطاهیرین المعصومین الناتو دائم فرعان جاین.اجماعین اللهم افرنا و, و جمیع المشتریین وارحمنا بر رحمتکیا رحم الرحیم.از شد که بس ما درباره مسئله به اصطلاح هش بود و اینکه که قشحرامه و قوایات ت... تریغین چه اهل سنت چه اهل شیعه در این جهت بود که لیس من نامن قشنا یا من قشنی یا لیس من لیسه و مسلمن خب این مطلب روشن بود هست شد که اما اصحاب ما در از قلیمال ایام روشی به اینکه که آیا این به اصطلاح این قش به لحاظ حکم وضعی چه حکمی داره و چه نکته درش هست در این جهت قدمای اصحاب ما صحبت نکرده هم. که مثلا قش کسی کرد آیا خیار داره خیار نداره چی هست چی جوری هست این مسائل رو متحرز نشوند بله از از متاخری مثل مرحوم جامال مقاصد که از قرن ده و مرحوم مقدس اردویلی اینها متعرض این مسئله شدند که آیا موجب مسخیار خیار موجب بطلان معامله باطل یا نه اما قدمای اصحاب ما متعرض این مسئله نشده بله قدمای اصحاب ما یکی از موارد قش رو متعرض شدن را همون خیاره که به اصطلاح همون چیزی که به اسم شما بذاشیم تسریه این چند روز متعرض اون شدیم شات مسرات و ابل مسرات متعرض اون شدن و این به اصطلاح تعرض اصحاب ما باز به اون مقداری نیست که در کتب اهل سنت راجع به خصوص این فرق که اسمش تسریه باشه که یک نوع تدلیسه یک نوع به اصطلاح غشه متعرض شده این متعرض این قسمت هستن توی روایات پیغمبر هم که حدیث معروفی بود که خوندیم و متعرض شدیم و توی خطابای آمه هم باز متعرض شدیم که متعرض این فرد شدن در کلمات اصحاب ما هم تقریبا از قرن چهارم. روایات ما نداره تصویر روایاتی که از اهل بیت باشه در چند تا اصطابه های شیعه آمده اما تماماً به سنیا برمیگره سند کلن به اصانی به بر برمیگره از سندهای ما نیامده وقتی از قدما قبل شیخ توسی قدس الله سره متعرضی این مسئله شدن و خود شیخ توسی هم مسئله تصویر رو آورده و یک چیز عجیب در کتاب خلاف شیخ توسی که واقعا هم تحکیب آوره چون ما تا که دیدیم شیخ خیلی دقیقه در این مسئله بله شیخ به مناسبه که البته ایشان خیلی کامل عبارات نمیاد قرقاتی میاد مرمون ساو جوازه من مطالبی رو که راجع به تاسیع در جواهر از جلد 23 از این چاپ متأخر صفحه 262 به ده و خیلی ایشان طولانی سال جواهر تو این بحث وارد شدن و تا 276 یعنی 14 صفحه در کتاب جواهر که طبعا من نمی‌خونم چون ما رو این جز نیست خیلی هم نکات خاصی داره حالا هم خوده کتاب جواهر نکات خاصی داره و اگر مرتب نوشته می که از اول تعبیر می خوب بود یه مقداریشون مثل همیشه یک بحثای لغوی هم فرمیدن که غزوان الله تعالی بحثه خوبیه بعد از اونها متعرض کلمات داره و ایشون خودش نگاه نکردن ایشون در اینجا نهر میکنن برشوی محکی یا خلاف اما اخبار الفرقه تدل این خیلی عجیبه یعنی در کتاب خلاف در غنه پنجم مرحوم شیخ طوسی ادعا کرده اجماع خوب هست یعنی اجماع رو میشه قبول کرد چون از که مسئله شد 70 سال چیزی کمتر قبل از شیخ توسی تو فقه ما آمده تو روایت ما نمیدونم تو لغه ما آمده میشه این رو قبول کرد پس از ابن جنید نقل ابو علی بن در لکن تعجب ایشون کرده به اخبار عمر این خیلی عجیبه احتمال میدم یا نظرش به همون اخبار خیاره حیوانه احتمالاً میونه تا ما ما یک دونه خبر در مصادرات ندید یک دونه نه انگار این خیلی عجیبه این تعبیر مخدوم شیخ رضوان الله تعالی خیلی عجیبه در کتاب خلاف البته ایشون نشونش در خلاف من دیگه لازم مراجعه کنم اساس تو مسائل بیشت از مراجعه می اینجا نه توی مراجعه کن چون خیلی اصل احتمام ما رو این جد نبود در هر حال بعد از این که مرموم شیخ طوسی یه نظر از خود هم در قصد در مقصود دارن در خلاف دارن دیگه این مسائل یواشتا دیگه شد استاندارد شیعه چون از که انتراسات شیخ خیلی از مسائل دیگه توی شیعه کاملا مفرح شد و مرموم صاحب شرای من در این کتاب الان اخیر نگاه کردم نگاه من کامل نبود اگر نگاه کنم نظرم وسیله محوم جد ماسول هستن نبود نداریشون تقریب وسیله هم به نظر نگیدم توش حالا نمید تقریب وسیله دیدم یک وسیله دیگه دیدم بر از اینکه یک وسیله با هاشه نگاه کردم ایشون هم نداشت یا مگر من اشتباه ترمیشون جوی دیگه متعرض شده باشه. علایه حالا من شرایع رو میخونم. خیلی عبار مرد بزرگواریست ایشون در باب خیار عیب آخرش داره با هاوانا مسائل از تصریت و تدهیسون خیلی لطیفه مطلبی که ایشون پرمونده خیلی لطیفه یعنی مخواد بگه عیب نیست این همون بحثی رو که عرض از خریم قرن دوم مفرح شده که عیب یا نه. و توی کتاب الاسلام داشت که منشتر آشاتن رو هم مسرات فهی خلابتون خلاقه این تدلیس و خیاری هم که در زمان در تحویر روایت رسول الله آمده همون خیار تدلیسه خیار ای نیست یعنی یا امضا بکن یا قبول بکن یا رد بکن حالا یه مطلب این مطلبیشان خیلی مطلب لکیف و زیباییست که مرهوم به اصحا محقق هلی ترموده بعد هم ویست با تو به خیار بین رد ولی بله امساک یعنی خیارش هم به تعبیر بنده به تعبیر جای نیزم به تعبیر بنده سناییه این خیار سلاسی نیست. چون از کل این خیار کلن ای و یرد و معاها لبنها حالا این لبنش با هم با ایشان رد بکنه یعنی به اگر دوشیده شیده موجوده اون اون شیر رو هم به او بله مثل لدن ها داره اینجا من الان از کتاب جواهر میخورم تو مرد اینم جدا م ارده داره و یرد دمه ها مثلدن ها او قیمت او خیلی ترجیب به نظرم این اشتباه هم توی م گذاشته اتفاباق که اشتباهه. دا دو مرت هاره ی دو ها لبن. مثل لبنه ها او قیمت ها تعذر نمیدونم یک ای چیزی اینجا که توی مرد گنا ها متونه بین پرانتز گذاشته ال حاله حالا که یرد دو مع ها لبنه ها این یک مطلب که خیلی فمنیه واقعا زرافت و دقت مرحوم صاحب شرایط ارز کل صابقاین بحث را ارز دقت خود درکت کنیم بعضی ها اینی که باید عوض بده عوض مثل لبنه ها بده این درجه است که خود لبن موجود نباشه اما اگر لبن موجوده لبن را بکنیم لذا این مسئله الان خود درکت این سؤال شخصی گاوی رو گرفته یا شتری یا گوسندی که مسررات بوده شیر تو پستان اون جمع شده زیاد که شیر شیر پراوان بعد با خونه شیر دوشی تموم شد تموم شد, شد که نه بوده تبلیس بوده و قش بوده و خریم بوده فیخ اما الان شیر موجوده سوال اینه قبض قفل سآل رو آیا علمزر شرعی همون شیر رو رد بکنه و گوسن رو یا نه صاحب گسفن میگه من گسفن میگیرم اما این شیر رو نمیگیرم قیمت شیر رو به من بده درد کردیم زراقه از محضره رو من منطقه یعنی اگر شیر و گسفن فعلا موجوده اما میکنیم آیا همین کافیست که شیر رو رد بکنن یا نه طرف یا من شیر قبول نمی کنم تو حالا این شیر دوشیدی، این شیر مثل تلفه تو قیمتش رو بده یا مثل شده اینشون عبارتش ظاهرش این که اول یه را دو ها لبن ها فکر میکنم شاید این چیز باشه از تو مهمون صاحب جواب شما داد عبز عبز. یعنی مختزای قاعده اینه که اول لبن رد بکن اگه لبن مصرف شده قیمتش یا مثل شده لیکن نه این که ایشون فهمده علا زوابت نه شکلی هم علا زوابت نه. در اینجا قویه هست که حتی اگر شیری که دو شیر موجوده دادن اون شیر کافی نیست دقیقه میگه این تو زمان ما الان خیلی متعارف شده مثلا یه شیشه دارو میگیریم میگره, میگره. خونه باز میکنه مصرف نمی کنه میبنیتش میگره میگه آله میشه ده هم که درش رو باز کردی مثل زم جواب فضله فواه اگر لذنش، اگر شیرش موجوده همون شیر شیب بده نه این زوابت نیست چون ممکنه بگیم شیر هم مثل داروز یعنی صاحب گز بگه، صاحب گرد بگه این شیر تا تو پستان من قبول میکنم تو با دست دوشیدگی من قبولش نمیکنم این شیر که بیرون این تا با حیوان باشه این مثال خارجی داده بیارید مثل داروز بعد تو خونه دارو مصرف نکنی فقط درش رو باز کردین. درش باز کنیم بستین که دلیم بیا قبولیم کنیم. یا همین مشاور گاز داد. درش باز کردیم هیچ مصرف نکردیم. بستین دلیم بسازیش ما قبول کنیم. همین که درش باز شد این مصرفه. همین که درش باز شد. لذا چقدر مطلب لطیفه که مثل صاحب جواهرم اول گفته الا بع مختز الزوابد باله. الکونی بعض از المبی ولزاد نفع آن ول خلاف محکی کشف فرموز بر انفع الاسلام فخر الاسلام مراد تصریح علما است علی اجماع علی یعنی ادعای اجماع شده که شیر رو بده لیکن انصافا اگه دقت بکنید همین که ادعای اجماع کردن روشن نیست یعنی مطلب حالا ایشون ادعی از قدم علماء روی زوابت قبول کردن لیکن این عرفی نیست معیار در طرف عدن طرف عرفه نه این اصطلاحات فقها این میگه خب این شیر دوشیدن شیر موجوده چه غلط میکنن دقت بکنید اما این نیست ممکنه طرف بگه تو که شیر دوشیدی این خودش تلفشیه. اگر میخوایی رد بکنی به من همون اول با شیر باید رضو میکردی الان که شیرش دوشیدی نوشن شد کنه طرف چی میخواب بگن؟ خیلی زریف مطلب کرد ولذا گفتن حتی اگر شیرش هم موجود باشه باید مثل لبن یا قیمتش رضو رد شرایط چاکیم مثل لبن نه اینجوری ببینیم به دومه ها مثل لبنه ها او قیمت ها از معتعذر یک معتعذر داره منشو صاحب شرایم قبول کرد مقدار خورما به طور باید بود ها مقدار خورما رو دو تفسیر بین علماء اسلام شد مثل ابو یوسف گفت چون در اون زمان اون قیمتشی با هم خورما بوده به مقدار خورما این تفسیر رو ابن حض قبول نکرد ابن حض گفت این ربطی به مقدار نداره این تعبده این توحیفیه سه من سه کیلو خورما یک من خورما رو باز بده میخواد سه کیلو خورما قیمتش از اون گوزنده بیشتر باشه کنسر باشه از قسمت قیمت شیر بیشتر باشه،, باشه پس دو تصویر از عبارت ابو هم خوندیم او دقیق کردیم از عبارت ابو هم خوندیم اون گفت که این یک من خورما چون متعارف بوده به اندازه اون شیره اعتبار به مقدار شیره. به همون مقدارشی. نه یک من خورمام لکه ابن حضم گفت ما یه قبول نداریم این توقیفه بقیفه. و این نحوه اختلاف در فهمه از روایات ما از اول باب فقد تا آخر فقد ترجیه بی این نحوی خب کدومی هیچ درسته که آیا حق با ابن حضمه یک نوع تعبده یا حق با ابو انصافا ما اگر روایت رو داشتیم شاید هم احتمال داره با نصیب نه هزم باشه احتمال اینکه که متعارف بوده قیمت شیرون قدر بوده اونم هست خیلی قوی نیست اما خوب دقت بکنید ما در فقه خودمون در فقه شیعه چون روایت نداریم دقیق کنید چون بگم چون روایت نداریم تمام فروع تسریه رو باید طبق قاعده حکم بکنیم ما اصلا تو این زاویه بحث وارد نمیشیم دقیقاً ما چه فکری شد که اون صائمن تمر اون یک من خرما عنوان قیمت شیره یا اون یک من خرما تعبده ما با یک من رو بریم قیمت شیر باشه نباشه نحوه اجتهاد ما اون شما اون نظریه فنیینند که ما توی این مسئله از چه راه وارد بشیم اگر تو مسئله از راه تعبود و اون روایتی که اهل سنت نقل کردن ممکن است اون نتیجه رو بده که ابن حضم گفته اما ما چون اون روایت نداریم و اگر اگرم برفرد قبول بکنیم بگیم اجمالاً در پرقه اهل بیت این روایت تسریه قبول شده با عنوان تدریس و نه با عنوان عید با عنوان تدریس قبول شده اگر به مقدار اجمالی شد ما باید خصوصیات مسئله را حسبالقاعده درست بکنیم خصوصیات مسئله را حسبالقاعده و حسبالقاعده اینطور میشه اینا گفتن اگر شیر موجوده شیر رو بده اگر شیر موجود نبود مثل شاقیمتشه بده این که اگر شیر موجوده شیر بده که این حسب حساب قاعده گرفتن که ظاهر عباس شرایع هم همینه ادعای اجماع هم بر مسئله شده این هم به نظر میگه خیلی دقیق نموشه چون معیار در این مسائل مسئله عرفه چون معیار مسئله عرفیست ممکن از در زاویه دید عرفه بگی این شیر رو که شما بردین حالا فلسه مثلا چون خیلی از دوستاها و دوستاها توی اینها شیرها رو غالبا زنها میدوشن مثلا مر این شیر رو مثلا یا بچه دوشنده یا کی دوشیده یا فلان ما یا قبول نمی کنیم. این شیر تا تو بستان قبول میکنیم حالا که دوشیده شده و بخ... مثلش هم اگر خواست پس مثلا ده کیلو شیر شمثلا 5 ش در این روز از این گاو گرفتیم، پس اون شیر و پاسریزی اگر مطرک باشه، یا شیر با کیفیت محینی، مثلش رو اونجوری می گیره. نه مرات پس اینی که باز در کتاب آمده که، اگر خود لبن موجود باشه لبن رو بده اگر لبن موجود نبود مثل یا قیمتش رو بده این انصافا روشن نیست خب بگم تبدیل شدن مثل قیمت در تلفه ممکنه این مثلا در قرفی این تلف حساب بشه. خب این رو بگم مثلی که شما در شیشه داری چی مصرف نکنه از دارون در شیشه رو باز کردن باز به اصلی نش میدونی دارو خانه میگه اما قبول نمی کنم میگه یک ذره مثلا هیچ کار نکنه بلده شما سر بسید داره داره میگه من به عنوان شیر خودم نمیگیرم مثلا اون شیر نیست ها اون همون شیر واقعا این زمانی تلفش تجربه میکنه که اورهان ازشی ندوشته باشه نه نه لازم نیست اونطور بشه طرف هر چیزی به حسبه میگه تواتو پرسنده گفت من قبول دارم. شیر من نلند الان چون رو قبولش نمیکنه شما دوشیدیم با دست خودتون من قبول نمی کنم. قبول می کنم نمی کنم یه چیزی مثل آب در کنار دریا مثلا اجازه بدین اگر ما فرض دید کردیم دید. که در عرف این عرف جا افتاده که دوشنده شیر در شیر محصره <تصفح> یه دفعه امر شخصیست نه که اون امر شخصی گوش نمی کنه. یه دفعه می گیم بلی نه امرو عرفی این شیر و فلانه دوشیده من نمی خورم. و این عرف اگر که میشی مخرب میگه عرف بشه مثل که الان عرف شده شما دارو رو باز می‌کنید میگن قبول نمی‌کنیم مصعرف شده میگه مصرف ما کردن هیچ چیز اصلاً حالا شما در صادر اگر فرض کنید مثلا من با مثال میگم این گل توی یه کیسه بود در این چه کیسه دیگه میگیم که اینو بردیم بردیم حساب نمی‌کنن در صادر دارو اینطور نمیشه شما جوابشون بگی میگن مصعرف شده فرض کنید پاکت شما پاکت یه مش برمیزون گل این حساب نمی‌کردن. نمی گفتن غلط شده، قبول میکردم. اما الان شما در شیشه واسطه قبول نمی‌کنن. این زمان عوض میشه. میخوام ببینم چی رو بگم. اینه که ایشون گفته، این شاید صرفاً همون جواب تو زمانه خودش بوده. ممکن است بگیم نه، در این عرف شیر که نوشیده میشه دیگه این حساب نمی‌کنن. اینه به من تو شیشه خود بخور. ما بی غیرت نمیخوریم، ما دیگه ما ما شیر میخوریم که در بازارتون چون الان نمیگه دستگاه دستا دستگاه خاصی دارن دستگاه سنتی دارن اجازه بستا... سنتی دارن ما اینجوری میخوریم وقیله حالا من عبارات شرایط رو می چون نمیخوام دیگه وارد این بحث بشن. خیلی خیلیشان طولانی وارد این بحث شدن و کلمات رو عبور البته راه خوبش این بود که مرحوم صاحب جواهر ترتیب خنی اولا عبارات میوردن عبارات از اصحاب بعد متعرض روایات میشد بعد خود قدما ایشون در اول بعد از اینکه نظر لحظی لحظه تثیر رو از کتب لغت خورده بله بعدم به وایت رو میاره که مسررات بعد بللا که لم عجد حاض لغظه فیشه علممه مووت صعله نامن مسوس اام مثلا ایشون دقت نکردن یعنی اعتقاد نداشتن یا پیششون نبوده تو اول لاعالی هست لکن هنانندوی حالا اگه اول لاعالی از خود رو و در کتاب دعائم الاسلام هست اونم عن نبی، اینم در اختیار نبوده اما در غیر اون در کتاب چیز بوده در کتاب معان اخبار این میگه الا ماهمه صدوقی معانل اخبار این رو ایشون آورده بعدم میگه که این از طریق جمهوره بله و به همین اکتفا کرده اصلا تو عملی شج توصی هم هست اونم از طریق جمهور طبعا ایشون فرمودن در چیزی از روایت نهدیم این مطلبیشان درسته مطلبیشان استخصانه فرمودن اما درسته توی روایاتی که ما که از اعمه علیه مسلام داریم از اعمه لفظ مسرات وارد نشده یا محفله بعدم همون روایت حلبی رو که خوندیم اونم عورده لیکن گفته توی این روایت حلبی هم لفظ مسرات نیست بله و لذا ایشون میگه که بعض از اصحاب میگن تمسک به اطلاق نصوص میکنن ایشون میگه نصوص درو میترا تمسک به اطلاقشون کنه <تصح> تو جای بحث نیست حالا من به هر حال فقط می‌خواستم با آیان تذکری داده بشه راجع به کیفیت طرح این مسئله در کتب اصحاب ما و راست هم از قرن چهارم این دیگه تو قرن بارد. از نجنه شده در روایات ما کلا نبوده از اون زمان وارد شده و حالا من متن شرایع رو میکنم وقیل یرد و ثلاثت انداد منتعام سه مده از تاان. سه مده هم دارید در سنده با که معروفترشون ساهه و ارز کردیم ساه چهار مده نه سه مده بعدم اینجا کلمه تام داره که شامل مثل خورما و گندم و جو و اینها میشه اما در روایات اهل سنت تعام هم داره قم هم داره که گندم باشه و تمرم داره که خورما باشه. این هم داره. سا هم داره. امداد هم داره. انعام منتحام هم داره. خوندی اون روایت اهل سنن. مرحوم صاحب جواهر قدس الله سره. مثل بقیه موارد. اینجا استخصاء متون روایات رو در مساده را آمنه کردن. من این که نگم هدفم نبوشن میشه من با طالب مصرح میکنه چون ما یه بحثی داریم که اگه بنا بشه مثل جواهر احیاء بشه و تحقیق بشه و واقعا هم کار خوبیه یعنی واقعا ما نیاز داریم به یک موسوعه یا داتول معارف حدیثه شیعه چون جواهر در درصت اغلب بوده و برای آدرس خوبه ما میگیم خودمون تألیف بکنیم میتونیم همه مطالب رو تو همین ذیلی کتاب اون حاشیه بیاریم اصل نقایص کتاب رو در حاشیه کتاب در تحریری کتاب چاپ بشه این چاپ کتابی کردم در این مصی که 43 جلده ممکن 200 250 جلد بشه جواهر با این تحقیقات و تعلیقات اما خب یه دوره فقه که وقتی این دوره تو صاحبش داشته بشه دیگه برای هیچ چیزی بیفتوری مراجعه نكنه ده در, در بحث روایت میشه در بحث متون فقهی من جمله این قسمت‌ها را می‌خوام بگم روشن بشه چه قسمت هایی رو جواهر چند داره مثلا در بخش لغت جواهر از این ایشان ایشون از باب از بله ایشون یک در کتاب احنا نشوف از نهایت الاثیر ابن سبو ایشون نهایه الاثیره نهایه الاثیر خیلی شاندار است در نهایه ابن مرادش محکی خب کتاب نهایت ابن اصیر کتاب خوبی است از کتبی که در غریب الحدیث نوشته شده خیلی متن علمی پخته خوبیه است وقتی یارو صحبت بشه بله بعد از او مصباح المونیر مصباح از این شرح مال کتاب کتابیسی که از خطور فقیه شافیه شرح اونه چیه المجموع چیه کبیر کلا و اینشالا به گناسیت متعرض مصباح المونیر میشید شبیه مثالونی شبیه یعنی ش... نه مجموعه. نماست سعی کرده اصطلاحات این کتاب فقی بیاره لغت هم بعض جا به کرده به اصطلاح شرح مصطلاحات فقیه تنها نیست لغت هم توش داره اما خب یک کتاب متاخریه بد نیست اجمالا بد نیست از سه جوهری هم نقل کرده سه از اینها تقریبا علمیتر و واقعا علمیتر و دقیق کرده از قاموس هم نقل کرده قاموس هم که شرح خود قاموس و شرحش تاجل عروس انصافا خود قاموس متن لغوی بسیار خوبیه شرحش که فوائد بسیار زیاد داره تاجل عروس که شرح قاموسه خودش یک داره آره شد یک لغت کتاب لغت خانشونسه لغت به خدای ما مثلا این مجموعه کتاب لغوی که مرهوم صاحب جواهر در اینجا آورده خب ما کتاب های خیلی خوبتری بهتر از اینی در لغت داریم اولا خود قریبال حدیث ابو عوید چاپ شده این مال مثلا قرن مثلا اوائل قرن سوم. خب خیلی از این نایب نسی از, نا... از, نا... از اون گرفته خیلی از اون بهتر دیویزان افرادشو خوندید کتب لغت دیگری که ما داریم الان خیلی همونسه جمهره هست دیگر خیلی دیگر اینه غرض اینی که ببینید در همین بخش مبانی لغوی میشه کتاب های دیگری رو در حاشیه اضافه کرد که معلومات بیشتری داشته باشی یک خیلی هاشم مرحوم صاحب جاهر عدل محکیه اینا هم خسیل باشه مراجعه بین به اصل مطلب مطلب درست بگاری یه محکی محکی نباشه. نگاتون কই این مسائده در اختیاریشان ایشانم نب... من حالا مثال ارستم یه روز ده خالص اینه اگر بنا ای کتاب تحریر بشه که واقعا به صورت یک دارت معرفت فقه شیعه در بیاد که معیارش این باشه که اگر این کتاب در اختیار ما باشه دیگه در هیچ مسئله فقهی به کتاب دیگری مراجعه نکنه این باید نقایص کتاب برطرف بشه میگم از نقایص کتاب همینه عبارات و ناقص اورده اون عبارات کامل بشه متون عبارات بیاد و مثلا در اینجا وقتی روایتی رو میاره و ایشون بیاده که از اخبارشون یکی خبر عبی هره رو ارده یکیم خبر عبدالله ابن عمر خبر عبی هم ما پیش اهل سلمت خوندیم و متون مختلف داشت متن واحدی هم نداشت مثلا اینا همه تو حاشیه بیاد چون خود مرمومه صاحب جواهر فوقش معلوماتش در این جهر در حدود مثلا کتاب تذکره علامه و خلاف شیخ توسیه که خود اون دو کتاب هم دقیقی نیستن در نقل ها بعد دیگه ایشون یه مقدار کلمات اصحاب رو عبرده که همش به عنوان نقل معناست و اگر متون عباراتشون آورده بشه خیلی فواهد بیشتری داره که حالا من دیگه وارد اون بحث نمیم خوب بشن. بعد مرحوم شرایع داره و بر رو به س خب بعد نوشته در کلم کتاب ها کتاب فلان چی چی گفته کدوم کتاب چی گفته یک مقدار قبارا ما این توضیحش رو نقطه پندیش رو ما از سر بیم نقطه که آیا سه روز باشه یا نه اینا نیست نیست دا داره کتاب خود اما تمام مطالبی که اینجا این جامعه کتاب فلان و فلان همه اشتهادات فوقهای ما چون روی ما نداریم همه شما هم رو غنب شیش خود ما هفته واضحه تاری چه چیه؟ سرش اینه این در دنیای اسلام سرش اینه. اون روایاتی که که بر نسبت دادن تو بعضیش داره 30 روز ایام تو بعضیش نداره. <تصفيق> من چیک کردم؟ من اشترا شاطن مصرا بله بعضیش داره 30 روز ایام ما خوندم من جو در دا که داده ابوالله علی سه نقل هر سه 30 ایام داره. توی متون احنا سنت ان ایده زیادشون 130 روز دارن ایده شون ندارم. و شايفه پس نکته اختلاف روایات اهل سنت ما هم که اصلا نداریم ما بگیم اختلاف روایات ما, ما که چه روایت نداریم این که مال ما روایات اهل سنت هم در بعضی‌هاش سه روزه در بعضی‌هاش حد نگذاشته انسا که اینطوره ما اگر بخوایم باشیم طبق ای که ما داریم چون ما هم در روایت اعتماد نکنیم ظاهرا نمیتونیم به حد سه روز بگذاریم چون ثابت این با تعبّد بشه به حد سه روزشام ثابت نیست دیگه آن مقیهش خودشون بخونن بعد دارن که و تسبوت و این بازم اباظ شرایط و تسبوت و تسلیت و شات قطعاً وقتی این شوشه می شه واقعاً با ادل اصلا صحیحه جز اهل سنت نداره سه روزش هم همین در روایات اهل که در کتب معتبرشون آمده، تو بعضی‌ها ادل و شاته تو بعضی‌ها شاته تنهاست بقر تو هیچ کدوم نیست تو فتاوهاشون هست و روزشون نیست این هم خلاصه بعد در اونا پیش ما هیچ کدوم نیست <تصفح> هیچ کدوم از این سلاثه موجود نیست ایشون نوشته تصمت و تصیت و تصمت و پشات و فناغت و البقره علا کرد داده بعدون شد که ما با صاحب شرایع موافق نیستیم اگر شما مسئله را حسب القاعده گفتیم فرقه نمی کنه بین اول و بقره نداره حسب بنابراین ولو سر را امتن حالا اگر یک کنیزکی رو شیرش زیاد کرد یا سر را امتن لم یثبت ها میخواد میگه فقط ایناست به انسان نمیمونه انصافا اینم مشكله اگر متعارض باشه که بگن این کنیزک رو میگیرین برای شیر دادنی ولی حالا چون کنیز نیست که در خارج این متعارض هستن اگر متعارف باشه برای شیر دادن و کسفت لبنده رو مطلوب باشه ظاهرن طبق قاعده فهمه بله اگر دلیل ما روایات باشه روایت دو تا داری یا یکی داره لکن اگر طبق قاعده باشه فرقی نمیکنه. و کذا لو سر البایه اتانن اولاق ماده به اصلا اگر ماده ای رو ظاهرا فهمه میکنه ایشون فرمونده که در اونجا خیال ثابت نیست مگر از مثلا بگیم اولاق شیرش و عدمی شیرش فرق نمیکنه شیر درسته باشه نداشت روشه کم شیر خور عرفیت نداره از اون جهت از اولاق اینا شیر این حیوانات ارزش نداره قیلو فروش نمی شه خود شیرش آلاقه صاحب و شیر یا خود شیر فنیرش خوبی چیکر شیر گذاشت با قول قدم هایستن و قل بس جمع بسید سر جمال بود شما ناقش شد, شد. ولو ولو زارت تسریه تو شاد حالا اگر تسریه شاد و سار ازاله که عادتا قبلا قضا سلاسات ایام اگر تسریهش از دین و عادت شد سقطت خیار دیگه خیاری نداره بله در بله به عنوان مت به از از سال در که عادتا قبل انقضاء ثلاث سیا اینه ثبتی که خداوند اضافه کردن انصافا هم اثبات این فرق خالی از اشکال نیست این تا سه روز این پرشی بود بعد از سه روز اوضاعش خراب شد ایشون میگه به هم از الزال بعد از ثلاثه بعد از این خیات ثابت نیست اینم به یه فرع دیگه حالا شو دیگه وقتی ما هم تمومش می‌کنیم شروع کنم که این راجع به مسئله تسریه و وجود بحث تسریه در فقه ما که ما عرض کردیم این بحث تسریه در فقه ما انصافا خیلی کمی نیامد در عبارات صاحب جماهر. متاسفانه به نظر ما خیلی فمنی نه از خلال راجع به گفتیم قبل از این که وارد نتیجه نهایی بشیم یه بحثی هم راجع به مسئله قانونی این بحث و قطع نظر از این بحث ببینید این کتابی که من برای کتاب نرمه کنم کتاب نظریات العقد حبدالرزاق سنهوریس از کردم که ایشون ایک از روزوکتین در دنیا عرب چونجا که من کسانی کسانیست که سال نظر در مسائل قاون و مسائل معاملات هم و معاملات و نخصوصا روی قوانین کشورهای مثل اروپایی مثل مصر مثل فرانسه و آلمان تا حد انگلیس. بیشتر کارش روی قوانین است و در کشمار عربی هم و کلوه طبقیه کشور عربی مثلا میگن بعض قوانش ایش ایشون نوشد ایشون در این کتاب نظره طور عرب انصافا هم زحمت کشیده خیلی انصافا با کار کرده و یک جلد کتابیشون اینه کتاب ایشون از این بحثه به مناسبت عقب و خصوصیاتی که در عرض داره و حالات و طوارعی که هست متعرض بعضی از مسائل شده یکی راجع به, به اصطلاح مشکلاتی که در عقد پیدا میشه به قول خودشون به تعبیر مشکلاتی است که به رضای در عقد چون عقد درش رضا باشه به اون ترازیه در عقد مزره ایشون در این جدی که من دارم چون بعد جور دیگرم شده صفحه 309 متعرض بحث تدلیس و غش شده و در صفحه 445 به بعد متعرض بحث غربن شده حالا من برای مقارنه ارز میکنم مثلا ایشون میگه در بحث غربن ایگهی که پیدا میشه مشکلی که پیدا میشه نسبت به عقده اما در باب تدلیس و غش مشکلی که پیدا میشه نسبت به رزاست نه نسبت به عقد یک تثیر غربیت برای مسئله. مثلا ایشون نسل فرانسوی تو در حاشیش متن فرانسوییش هم نوشه که شما بر اصلا بلد نیستم آیان خودشون مرزیه کنن متن قانون فرانسوی رو هم آورده یکن متن ترجمه شده و به عربینه تدلیس یعی با رضا تدلیس یک نقصی و عیدی در رضای به عقد درست میکنه اینا آمدن که انذر حقوقی قبل عیدیست در خود عقد تصور اما تدلیس به عقد نمیخوره به رضا میخوره نه به خود عم ایشون اناوینی داره عنوان اولش غلطه اناوینی که به رضا میخوره. یکی غلطه یکی تدلیسه یکی اکراهه ما ایشا... چون تو بحث بی بیشتر به قواهر صورتیم تو بحث مکاس محبنه تو قواهر صورتیم ما انشاءالله خواهیم گفتیم به این اکراه و تدلیس سرقه حالا اینا یک رو گرفتن اینشان توضیحاتش رو بعد ارسای کرد پس در علمای اسلام ادهی هم اکراه رو مثل تدلیز گرفتن این قربیان همونتون چون یک نقطه خیلی مهمی هم من بعد اشاره میکنم ما اکراه رو در فقه شیعه با تدلیز جدا حساب میکنیم اما در فقه اینها اکراه رو زدن به عیوبی که به رضا میخوره پس تدلیز یعیب با رضا اذا کانت الهی مستعمله اون حیله هایی که به کار برده شده ضد دل جسی جسیمت در باب قدیز این قیل رو عبردن چه باید اون حیلهی که به کار برده شده بزرگ باشید چرا؟ چون گفتن ما در زندگی در باب قبل هم همینطور خیلی عجیبه در باب قبل هم به نظر ایشون اصلا بحث میکنه که مسئله قبل در عدی از قوانین نیامده چون میگه غالبا متعاقده این دنبال قبل ه <تص> اصلا لظام معاملات یه ندایشو قبنه اصلا ولذا بله ایشون مثلا در باب قبن میگه لم یرد فلقانون المدنی المصری نست سن فل فلقبن فی کتاب الالتزامات. این اداته ایشون به نست مثلی گرفته ما یه توضیح رو در بحث قبن نگرسیم تو خیارات توضیحش رو خواهیم گفت اصلا اده از اهل سنت مثل ابن حض و قبن اصلا خیار قبنم قائل بیسته این فکر ز... سنیه یعنی فکر مصری یک مقدار زیر بناهای فکری فقه سنی داره و لذای داره ولکن ورد فی باب البی نسن یه و اجزا للغبن الفاهش خوب تو غبن هم کلمه فاهش رو به کار چون میگه فرصم قیونتی کتاب داره دل 100 تا 500 تا هم بفرشین اینو خن دقیق کردی این هیان هم این کلمه جسیمه رو تو قانون فرانسه کلمه جسیمه رو چرا به کار برده چون یه تو معاملات یک نوع از هیان متعارفه مثلا میدر میگه دستمال تا تربش میشن به بشن، شنگش از نیرو چرا میذارن چراگه قرنو بالاش میذاره که به یک شکل خاصی ارز میگه یک مقدار از هیان برای عرضه جنس متعارفه این رو ما نباید تو تدلیس و قشت هستان بکنیم. بکنیم از تدلیس اولا ما بعد توضیح میدیم که واقعا درزا میخوره یا به عقل میخوره چرا آمدن درزا زدن به در عرض نزدن چون میگه قرن عرض رکنش ترسه این عقله کتاب و پود این نشه. کتاب کتابی که ست تومنه شما به ازارش 500 ست تومن قرار میدید این به خود عقل اقریدا کرده تقابل درست نیست اما در تدهیز شما شیر فروختی شیر هم هست توش آب اضافه کردی پول به ازای شیره رضا این مشکل پیدا کرده اگر نفهمه توش در درست شیره به این قیمت نمیخره یعنی ایشون میگه تد... نه... چون شما میکرده هیچ فرق نمیکنه کنه فرق نمی کنه فرق نمی این بحث های قانونی رو من مخواهم ذهن شما رو آماده بکنم که در دنیای حقوق بحث های قانونی رو این زمینها کار میکنه. مثلا اینجا میاد میگه تدلیس یعیی با رضا اضاکان اطلحی این نسل ماده قانونی است که متن فرانسوی شما آورده اضاکان اطلحی علال مستعمله ضد در متعاقه هیلی که برزر دو به کار بودش جسی اگر حیله بزرگ باشه اگر حیله کم باشه جنس رو جلا میده جنس رو چراغوش رو شد میکنه بلی که این رو دیگه ما تدلیس به اینطور به هيسو انه لولاها اگر این بیال نبود لمار دیگه پس این زاویه بحث رو خوب دقت بکنید این یک مطلب که میخوام بالا بگم که یکم روش فکر بکنید یه مسئله میگم چون بحثه فساد رو و مسئله میکنند در حقوق قانونی ان این بحث فساد رو من اینجا کمی توضیح میدم چون خیلی نافعه برای فقیه اسلامی ما منافع ایشون مثلا میگه فساد رو در قانون خودشون تعریف میکنن فساد عرض. یکی ان ادام عقده، یکی فساد مطلق عقده، یکی فساد نسبی عقده، که ما شیم میخواید داره یکی ان ادام عقده، عقد کلی منعدمه عقد اصل نیست، یکی اینکه عقد فاسد از مطلق، یکی اینکه عقد فاسد از نسبیه. چون در کتاب های ما این تقویل نمی کنیم. من یه مقدار این توضیحات بدم چون اونا بحث می که تدریس موجب به فساده چه فسادی رو ایجاد می آیا تدریس البته تدریس به عقل نفاد اعلام که نیست آیا فساد مطلق یا فساد نسبی در این کتاب یک فصل خاصی رو قرار داره برای اقسام فساد البته در فقیه اسلامی ما هم عدهی مثل احناف بین فاسد و باط میگن فران عقب فاسده، فران باطله. ما الان در اصطلاحات فقیه خودمون فرق نمیذاریم. پس چند تا شد شد. یک، یکی تعلیقی بودن یا فساد نصفی هست. یکی فساد مطلق. یکی این ادامه هم. این یک تقسیم که ایشون از قوانون اروپایی نرم نرمه میکنه. البته ایشون یک نکته خیلی نرم میکنه که خیلی این به نظر من قابل توجه. ایشون میگه در قانون روم قدی در عهود فقط فساد بود چیز دیگری نبود یکی بود. یعنی هر عقدی که واجد شرایط نبود فاسد بود. این خیلی نکته مهمی چون ما در فقهای اسلام و در علمای اسلام داریم که کسانی که میگن هر نهی در هر معامله بخوره، به هر شک فقره فاسده. تا یه این تأثیر از قانون روم قدیم بود، روم باستان بوده. مثلا الان شما مشهور به فقهای اسلام شیعه و سنی در روز جمعه در وقت ازان ظهر جمعه اگر عقل رو نماز جمعه اقامه بشه عقل باطل نیست گفتن فضر رو بی نگفتن فلا طبیعی اینطور مثلا استفلا کرد لیکن خواهیم گفت مثلا ابن حض میگه نه تا نهر آمد عقل باطل احمد ابن حضم میگه باطل خیلی تجربهوره اینایی که ظاهری هست به علم اخباری ها اینایی که به زواهر تمستوک میکنن دقیقا همون تفکری که در روم باستان در اصطلاح عقود داشته هر جا در هر معامله نه واقع شد موجود فساد میشه و یک فسادم بیشتر داریم، این سه نسم فساد این ادام فساد مطلق فساد نسبی نداریم یکم این هم توضیح بودیم حالا که دیگه باردیم که این نافذ باشه برای آشنایی شما با اصطلاحات روز مصطلی الله علیه و حلقه اینا رو دیگه سی بوت تست شام